بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره ستایش خدای را ذاتی که بربنده خود کتاب را نازل کرد و برای آن هیچ گونه که جی را قرار نداد در حالی که استوار یعنی قایم به مساله مردم است تابتکاران را از عذاب شدیدی که از جانب اوست بترساند و مسلمانانی را که کارهای نیکو می کنند بشارت بدهد که برایشان مزد نیکو یعنی بهشت جاودان است همیشه در آن می باشند و کسانی را که گفتند خداوند فرزند گرفته است بترساند چیزی که نه خودشان به آن علم دارند و نه هم پدرانشان سخن بزرگ و خطرناک است که از دهنهایشان بیرون می شود به جز دروغ چیز نمی گوین. اگر به این سخن ایمان نیاورند پس آیا تو خود را از فرت اندوه به پای ایشان هلاک می ما هر آنچرا در زمین است بیگمان آن را برایش زینتی قرار دادی تا ایشان را بیازماییم که کدام یکیشان از حیث عمل نیکوتر است و ما را آنچرا روی زمین است ترانجام خاک بیگیاهی خواهیم گرداند آیا پنداشتی که بیگمان از حاب کهف و رقیم از جمله نشانه های عجیب ما بودند؟ چون این جوانان به غار پناه بردند پس گفتند پروردگار ما از نزد خود رحمتی بر ما ارزانی فرما و برای ما از این مشکل ما راه نجاتی فراهم گردان سپس بر گوشهایشان در غار چندین سال پرده خواب را زدیم بعد از آن ایشان را برانگیختیم. تا آشکار کنیم کدام یک از دو گروه مدت درنگ خود را بهتر حساب کرده است ما برای تو داستان ایشان را به حق میگوییم بگو ایشان جوانانی بودند که به پروردگار خیش ایمان آوردن و ما بر هدایت افزودیم و ما به دلهای قوت دادیم هنگامی که برخواستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است بجز وی با جز وای به هیچ معبود نیایش نمی کنیم. که اگر چنین کنیم در این هنگام سخنی دور از سنجش زدهیم و اینها قومه ما هستند که با جز خدا معبودان دیگری را برگوزیده چرا صحبت روشن بر ثبوت آن نمی آورند پس کیستمگارتر از کسی که بر برخدا به در دروغ افترا کرد و چون از ایشان و آنچرا را جز خدا می پرستند دوری جستید پس در غار پناهنده شوید. پروردگار شما از رحمت خیش به شما فیضان می کند و در کار شما گشاهش فراهم می نماید و خرسید را در آوانی که طلوع می کند می بینی که به سمت راست غار یعنی محل سکونتشان میلان می کند و در هنگام غروب به طرف چپشان می گذرد و ایشان در گشادگی از آن غار قرار داشتند این از آیات خداوند است هر کی را خدا را یاب گرداند حقا که راه یافته است و هر کی را به گمراهی بگذارد برای او حامی و هرگز نیابید ایشان را بیدار می پنداشتی در حالی که خوشتا بودند، و ما ایشان را با پهلوی راست و پهلوی چپشان نگردانیدیم و سگ ایشان همچون پاسدار بازوهای خود را بر آستانه غار دراز کرده بود اگر به ایشان نگاه میکردی بیگمان از ایشان روی برطافت فرار می کردی. و ترس از ایشان وجود وجودت را میگیرفت و بلین گونه ما ایشان را از خواب بیدار کردیم تا باین خود سؤال کنند. یکی از ایشان گفت چی مدتی درنگ کردید؟ گفتند شاید روزی یا پاره از او روز درنگ کرده باشید و چون به نتیجه نرسیدند گفتند پروردگار شما به آنچه چه درنگ کردید بهتر می دارد. او کنون یکی را از میان خود با این پول خود به شهر بفرستید تا ببینند کدام یک از ایشان غذای پاکیزه تر دارد و از آن به شما غذای بیاورد و باید در شهر روش لطفکارانه را در پیش گیرید و بر شما کسی را آگاه نسازد واکن اگر ایشان بر شما دست یابند شما را سنسار یا شما را با آین خود برمی گرداند و آنگاه هرگز رستگار نخواهید شد و به دین مردم را از حال ایشان خبر گردانیدیم تا بدانند وعده خداوند حق است و در قیامت شکی نیست انگامی که مردم آن سرزمین میان خود در زمینه نزاعی کردند بعضی گفتند امارت برغار ایشان بسازید پروردگار ایشان به حال ایشان آگاهتر است ولی آنونی که در کارشان حقیقت را دریافتند گفتند یقیناً برغار ایشان مسجدی بسازیم گروهی خواهن گفت از آب کهف سکس بودن که چهارم ایشان سگ آنها بود و گروه دیگر خواهند گفت پنج کس بودند که ششم ایشان سگ آنها بود همچون تیره که بر تاریکی می اندازند و خواهند گفت هفت کس بودند که هشتم ایشان سگ آنها بود بگو پروردگار من به تعداد ایشان آگاه تر است تعداد ایشان را جز گروه اندک کسی نمی داند. پس در مورد ایشان جز به گونه بسیار روشن و واضح گفت مکن. و در مکن ایشان از هیچ یک از ایشان که برای گفته هایشان ها دلیل ندارند مپرس و هرگز مگوی من فردا این کار را انجام می مگر اینکه به با آن علاوه کنی اگر خدا بخواهد و چون فراموش کردی همین که با یادت آمد آن فراموشی را جبیره کن پروردگارت را یاد کن و بگو امید است مرا پروردگارم برای مقرون به ثواب نزدیکتر تر از این را کند ایشان در غار خیش سه سال درنگ کردند و نه سال دیگر بر آن افزودند بگو مدتی را که ایشان درنگ کردند خداوند بهتر می اسرار اسراری آسمانها و زمین از آن اوست چقدر بینا و چقدر شنواست ایشان با جز او حامین ندارند و هیچکس را در حکم خیش شریک نمیگیرند. آنچه را با تو از کتاب پروردگارت وحی شده از طلاوت کن هیچ تبدیل ای برای سخنان او نیست و جز او هیچ پناهگاهی نمی آمی و خیشتن را با بودن با کسانی شکیبایی بخش که با پروردگار خیش در پگاه و بیگاه نیایش می کند تنها رضای او را می جویند و خاطر جستجوی زینت زندگی دنیا و چشمان خیش را از ایشان مگردان و کسی را پیروی مکن که دلش را از یاد خیش قافل ساختیم او که هوای نفس خود را پیروی کرد و کاری او افراد است بگو این سخنان حق است جانب پروردگار شما پس هر که خواهد ایمان آرد و هر که خواهد کافر شود بیگمان ما به ستمگاران آتش را آماده کرده ایم که سراپرده ای آن ایشان را احاطه می کند و اگر فریاد رسی بخواهند برایشان آبی چون فلز گداخته شده داده می شود که روحایشان را بیریان می کند چی بد آشامیدنی و چی بد آسایشگاهی ولی کسانی که ایمان آوردند و کارهایی نیکو کردند ما بیگومان موز کسی را که کاری می کرده است زایی نمی کنیم برای چنین کسانی باهای جاودان است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارند. در آنجا دست بندهای تلایی را به حیث زیور می پوشند و جامعه های سبز از لباس ابریشمین نازک و لباس ابریشمین زخیم می پوشند در آنجا بر تختها ها تککنان نشستند چی نیکو مزدی و چی خوب کاهی. و ایشان داستان دو مرد را بیان کن که برای یکی از ایشان دو باغ از انگور دادیم و گرد, گرد آنها را با وسیله درختان خرما احاطه کردیم در میان این دو باغ حاصل زراعتی بسیار خوب قرار دادیم بر دو باغ بارور گردید و از این یعنی حاصلات هیچ کم بوده به وجود نیامد و در هر دو باغ بارهایی را جاری ساختیم و برای صاحب آن میوهی و به دست می آمد او در حالی که با هم صحبت می به دوستش گفت از تو با مال فیزونی دارم و نفرهای نیرومندتری در اختیار دارم و به باغ خیش در حالی داخل شد که به خویشتن ستمگار بود گفت هرگز گمان نمی کنم که این باغ نابود شود و نه هم گمان دارم که قیامت برپا شدنی باشد و حتی اگر به سوی پروردگارم هم بازگردانده شوم یقینا جایگاهی بهتر از این خواهم یافت در حالی که دوستش با وی صحبت کرد گفت آیا به کسی که تو را از خاک و باز از نطفه فرید و باز تو را به شکل مردی در ورد کافر شدید ولی من به این اعتراف دارم که همانا خداوند پروردگار من است و به پروردگار خود هیچ کس را شریک نمی آورم چرا هنگامی که با باغ در نگفتی این همان چیز است که خدا خواسته است قوت نیست و جز خدا اگر مرا ببینی از نگاه سروت و فرزند از تو کمترم با این هم شاید پر برایم چیز بهتر از باغ تو بدهد و بر باغ تو عذاب حساب شده از آسمان بفرستد و آن را به میدان صاف لغزنده مبدل سازد یا آب آن در اعماق زمین فرو روان. پس تو هرگز قدرت بازجستن آن را نداشته باش. بدین ترتیب این ترتیب اش را تبایی فرا گرفت او به حسرت مصارفی که در آن کرده بود دست خود را به هم نیمالید. در حالی که پایه های باغ بر سحقفای خود فرو افتاده بود و میگفت ای کاش هیچ کسی را به پروردگارم شریک نمی آورد.» او کنون او جمعیتی نداشت که او را به جز خدا در برابر عذاب خدا یاری کند و نه از خودش کاری ساخته بود. اینجاست که آشکار میگردد اختیار مطلق از آن خدای برحق است و اوست که بهترین ثواب و بهترین عاقبت را فراهم می‌کند. زندگی این دنیا را و ایشان با آبی تشبیه کن که آن را از آسمان فرو ریختیم با آن سبزه زمین در هم می پیچن. سپس می خوش کرد و در هم می شکند وکای آن را باد به با هر سو می و خداوند بر هر چیز توانست مال و فرزندان وسیله زینت زندگی دنیا هستند ولی اعمال ماندگاری نیکو در نزد پروردگار تو هم از روی سواب بهتر است و هم از روی امیدواری و روزی که ما کوها را به حرکت می آوریم و زمین را آشکار هم شده می بینیم و همه آنها یعنی انسانها را یک جا گرد می آوریم پس هیچ یک از ایشان را باقی نمی گذاریم و به ایشان گفته می شود او کنون به همان شکلی به پیش ما آمدید که در اول بار شما را آفریدیم آره شما فکر میکردید که ما برای شما معوید قرار نخواهیم داد و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و گنهکاران را از سبب چیزهایی که در آن سب شده است ترسناک می بینی. ایشان می گویند وای به حال ما این کتاب را چی شده است که هیچ چیز را چی کوچک و چی بزرگ فرو نکرده مگر که آن را حساب کرده است و همه اعمال خود را حاضر می بینند پروردگارت به هیچ کس ظلم نمی کند و بیادار وقتی را که با فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس او از جن بود لذا از حکم پروردگارش نافرمانی کرد با این هم آیا شما او و فرزندانش را با جز من به حیث دوستان خویش انتخاب می کنید در حالی که ایشان دشمن شمایند چی بد وضع است برای ستم گاران که به جای من می گیرند؟ من ایشان یعنی شیاطین را بر آفرینش آسمان و زمین و بر آفرینش خودشان شاهد نساختم و من گمراهان را دستیار قرار نمی دهم و دارید روزی را که خداوند می گوید آنانی را که با من شریک قرار داده بودید فراخانید هر قدر که ایشان را خوانند خانند جوابشان را نمی دهند و در میان ایشان یعنی مشرکان و بطان معبودشان را مایه تباهی قرار دادیم گناهکاران آتش دوزخ را می بینند و پی می برند که در آن افتادنی هستند و برای بازگشت از آن وسیله نخواهند یافت و ما برای مردم در این قرآن به گناه های مختلف مثال آوردیم و اما انسان پیش از هر چیز جدل می وزن. مردم را هنگامی که هدایت به سوراغشان رسید از این باز نداشت که ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند جز اینکه که به سرنوشت پیشی و شوند یا عذاب الهی در برابرشان قرار گیرد ما پیامبران را نمی فرستیم مگر بشارت دهنده و بیم دهنده و کافران همواره به وسیله دلائل باطل مجادله می وزند تا اگر بتوانند بدان وسیله حق را از میان ببرند و آیات من و مجازاتی را که به ایشان وعده داده شده به مسخره بگیرند و کیست تمگارتر از شخصی که به آیات پند داده شود؟ ولی او از آن رو برتابد و آنچه را دستهای او انجام داده فراموش کنند بیگمان ما بردلهایشان پرده افگندیم تا نفهمند و در گوشهایشان گیرانی نهادیم و چون ایشان را سوی هدایت فراخانی هرگز رهیاب نمی و پروردگار تو آمور زنده و صاحب مرحمت است اگر از ایشان در برابر اعمالشان حساب می گرفت بدون شک عذاب را بر ایشان تسریعی می بخشید اما برای ایشان موعدی است که جز آن هرگز پناهگاهی ندارند و آن شهرهایی را که ستمگاران نشیمنداشتند به سبب ظلمی که به عمل آوردند هلاک کردنیدیم. و برای نابودی ایشان موعدی را تعیین کردیم به یاد آور وقتی را که موسا به جوان همراه خود گفت من تا به محل تلاقی دو بحر برسم یا راه بستولانی را بپیمایم، از رفتن باز نمی و چون به محل طلاقی بین آن بحرها رسیدن ماهی خود را فراموش کردن آن ماهی راه خود را در بحر نکم پس چون از آنجا گذشتند موسی و جوان همسفر خیش گفت صبحانه ما را بیاور بگمان ما از این سفر خود سخت خسته شدیم. همسفرش گفت با یاد داری هنگامی را که به کنار آن سنگلاخ جای گرفتیم من در آنجا جریان فرار ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی دیگر این را فراموشم نگردانید تا با تو یاد او کنم و بگویم که ماهی به گناه شگفتنگیزی راه خود را در بحر گرفت موسی گفت این بود چیزی که ما می خواستیم پس به نشان قدم های خود بازگشتند ایشان بنده از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود مرحمت عنایت کرده بودیم و از نزد خود به او علمی را آموخته بودیم موسی به او گفت آیا اجازه می دهی که از آنچه چی به تو از رشد آموخته شده به من بیاموزی؟ در جواب گفت تو هرگز با من توان شکیبایی را نداری و چهطور چی بر چیزی که به آن آگاهی همجانبه نداری شکیبایی می وزی؟ موسی گفت اگر خدا بخواهد مرا صابر خواهی یافت و از امر تو هرگز سرپیچی نخواهم کرد آن دیگر گفت اگر مرا پیروی می کنی از من درباره هیچ چیز سوال مکن تا من خود در مورد آن به تو یاد کنم ایشان براه افتادند تا به کشتی سوا شدند آن شخص کشتی را سراخ کرد موسا گفت آیا کشتی را سراخ کردی تا اهل آن را غرق گردانی راستی چی کاری بدی کردی او گفت آیا به تو نگفته بودم که هرگز با من صبر کردن نمی توانی؟ موسا گفت مرا در برابر چیزی که فراموش کردم معاخزم مکن و در این کار با من سختگیری منو باز به راه افتادم تا با نوجوانی روبرو شدن آن شخص نوجوان را کشت موسی گفت آیا تو شخصی پاکی را کشتی که کسی را نکشته بود بهراستی کار زشتی را مرتکب گفت آیا به تو نگفتم که هرکز با من صبر کردن نمی توانی موسی گفت اگر بعد از این از تو در مورد چیزی پرسیدم پس با من همراهی مکن من از جانب من معذور پنداشته خواهی شد باز بر راه افتادند تا اینکه به با باشندگان شهری رسیدند از آنها غذا طلب کردند اما اهل شهر از مهمانداری آنها خودداری کردند ایشان در آنجا دیوار را یافتند که در شرف غلطیدن بود و آن شخص دیوار را راست ساخت موسا گفت اگر می در مقابل آن مزدی می گرفتی. او گفت اینک وقت جدایی میان من و توست او کنون در مورد آنچه صبر کردن اتوانیستی تو را آگاه می سازن. اما آن کشتی از نیازمندانی بود که در بحر کار می کردن. پس خواستم آن را معیوب سازم زیرا در پیشان پادشاهی بود که هر کشتی سالم را بزور می گرفت. اما آن جوان پدر و مادر او مؤمن بودند ترسیدیم که مبادا ایشان را به سرکشی و کفر بکشاند خواستیم تا خداوند به ایشان فرزندی بهتری از وی بدهد پاکیزهتر و دلپذیرتر و اما آن دیوار با دو پسر یتیم آن شهر تعلق داشت در زیر آن دیوار گنجی برایشان وجود داشت و پدر ایشان مرد صالحی بود پس پروردگارت خواست ایشان به سن رشد خود برسند و گنج خود را بیرون آرند و این مرحمتی بود از پروردگارت و آن را از پیش خود نکردم این از تعویل چیزهایی که در برابر آن شکیبایی کردن نتوانستی از تو در باره زلقرنین می پرسند بگو اینک با شما قسمتی از داستان او را بیان می کنند. ما در روی زمین او را قدرت دادیم و همه وسایل را در اختیار او گذاشتیم. و او از این وسایل استفاده کرد تا چون به غروبگاه آفتاب رسید پنداشت که خورشید در چشمه گلالودی می نشیند و در نزدیک آن قومی را یافت گفتیم ایزو قرمین تو می توانی ایشان را مجازات کنی یا با ایشان از در نیکویی پیش آمد ورسی گفت اما کسی که ستم کرده باشد او را مجازات خواهم کرد سپس شون به پروردگار خیش بازگردد خداوند او را مجازات شهیدتر خواهد کرد و اما هر که ایمان آرد و نیکو کاری ورزد پس پاداش نیکو خواهد داشت و به او دستور آسانی خواهد داد و باز با استفاده از وسایل دست داشته به کار خود دوام داد تا اینکه به خواستگاه آفتاب رسید آفتاب را چنان یافت که بر گروه که میان ایشان و میان آفتاب هیچ حائل قرار نداده بودیم برمی آمد و این چنین بود و ما به آنچه به دسترس او بود کاملا آگاه بودیم و باز با استفاده از دست داشته به کار خود دوام داد تا چون به میان دو کوه رسید در آنجا مردمی را یافت که به فهم سخن نزدیک نبودند گفتند ای زلقرنه یا جوج و ما جوج در زمین فسادکارند آیا امکان دارد که با تو مزدی بپردازیم تا میان ما و ایشان صدی بسازید؟ زلقرنان گفت دسترسی را که پروردگارم در روی زمین به من داده است از مزد شما بهتر است پس مرا به نیروی خیش یاری کنید تا میان شما و میان ایشان صدی بسازم تخته های آهن را به من بیاورید تا آنگاه که هر دو کرانه برابر شد گفت آتش بزرگ در کنار این توته های آهن بیافروزید تا چون آن تخته های آهن را آتش افروخته گردانید گفت به من مس بیاورید تا بر آن دیوار این مس گداخته را بریزم پس دشمنان نتوانستند بر آن بالا روند و هم نتوانستند آن را شگاف کنند زلقرنان گفت این رحمتی است از پروردگار من و چون وعده پروردگار من فرا رسد آن را هموار می گرداند و وعده پروردگار من حق است در آن روز بعضیشان را می تا در بعضی دیگرشان در زند و در سور دمیده می شود پس همه ایشان را جمع می کنیم در آن روز دوزخ را به کافران به شکل گسترده عرض می کنیم اومان کافرانی که چشمانشان از یاد من در پرده از غفلت بود و شنیدن نمی توانستند آیا کافران پنداشتند که بندگانی مرا با جای من اولیای خیش انتخاب کرده می توانند؟ دو من دوزخ را برای کافران به حیث مهمان خانه محیا گردانی بگو آیا شما را بعضیان کارترین اشخاص از روی عمل خبر بدهیم؟ کسانی که تلاش هایشان در زندگی این دنیا به هدر رفته و با این هم فکر می که کاری نیکی انجام می دهند. اونها کسانی اند که از آیات پروردگارشان و از دیدار او انکار ورزیدند. پس اعمالشان حبتش شد و به همین دلیل در روز قیامت برای ایشان وزنی قرار نمی دهیم. یعنی قدر قائل نمی شویم. به این ترتیب جزای ایشان دوزخ است، زیرا کافر شدند و آیات و پیامبران مرا به مسخره گرفتند او واقعا کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند برای ایشان به های فردوس به حیث مهمامسرا آماده شده است که در آن دانه به سر برده و از آن تغییر محل نمی کنند. بگو اگر بحر برای تحریر کلمات پروردیگارم به حیث رنگ قرار داده شود بگو من قبل از اینکه کلمات پروردگارم ختم شود بحر خوش می شود و اگرچه همانند آن بحرهای دیگر را به حیث رنگ کمک بیاوریم بگو بگمان من نیز مثل شما بشر هستم به من وحی می شود که خدای شما همان و خدای یگانه است پس هر که آرزوی دیدار پروردگارش را دارد باید عمل نیک انجام دهد ده و کسی را در عبادت پروردگار خود شریک نسازد